در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد از من اکنون تمع صبر و دل و هوش مدا کان تحمل که تو دیدی همه ورباد آمد باده صافی شد و مرغان چمن مرث شدند موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد بوی بهبود ز اوزا جهان می شنبم. شادی آورد گل و باد سبا شاد آمد ای عروس هنر از بخت شکایت من و ما هجله حسن بیا رای که داماد آمد دل فریبان نباتی همه زیور بستند دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد زیر بارند درختان که تعلق دارند ای خوشا سرب که از بارغم آزاد آمد مترب از گفته حافظ قزلی نغز بخوان تا بگویم که زه عهد تربم یاد آمد